Bye. هم به شما دادیم منتشر بکنیم یه گفتگوی جالبی رو انجام دادیم با دانیال هیت عزیز که تا چند دقیقه دیگه آغاز میشه و گوش کنید گفتگو فان و جالبی شده دانیال از های مشهد و همینطور که خودش میگه سالهای زیادی داره فعالیت میکنه چهار پنج سالیه که کارشو داره پابلیک کخش میکنه و در اختیار شنوانده قرار میده برای گوش دادن خب خودتون گوش بدید و آنیدارم که خسته نشید و این مصاحبه رو هم با دقت تا آخرش گوش کنید و نکات لازم رو بگیرید ازش مثل امید. همیشه هم گوش برنامه رو محمد دیگو عزیز تنظیم کرده و زحمت قابلش رو هم که عزیزانمون در آرت ورک کشیدن امیدوارم که خوشتون بیاد این شما و این دانیال هیت خب سلام دانیال عزیز مهمون برنامه مایی این هفته و ما بالاخره تونستیم با یک گفتگو خوب رو شروع کنیم خودتو برامون معرفی کن و سلام کن به شنونده های عزیز سلام داداش. ایشالله علاقه همه خوب باشه هم شما هم شنونده ها دانیال هیت هم دیگه چه معرفی برات بکنم حسن کجایی کجا زنگی میکنی سن که تقریبا حالا رشتم که فوق سیکل دارم یعنی 6 سال تو دبیرستان موندم و حقیقتا ولی خب نتونستم دیپلم بگیرم نه این که نخاما نشد حالا برس یه سری جریان ها تو بعد این نوه اسفند که بیاد دیگه 22 سال نمون میشه بچه مشهدم آره. از زمانیم هم که یادم میاد مشهده حتی شهرهای مختلف زندگی که دارم و مدت زمانی های کمس ما و ما شیش ما یعنی بیشتر مشهد بودی و مشهد به دنیا بود. آره خب از وضعیت هیپپپ مشهد برامون بگو والا وضعیت هیپپپ مشهده وضعیت خیلی داغونه کنه رفیق <تصفح> جدی دارم <به> <تصفح> وضعیت خیلی داغونه. من یه هفت سالی هست فکر کنم موزیک دارم کار میکنم والا الان سه دست سا آدم تو مشهد ما داریم یا رپرن یا میخوان رپر بشن یا رپر بودن خدافزی کردن یعنی از این سوالت اصلا خارج نیست بعد این جدیداشون که دیگه خیلی معرکم مثلا طرف بلافاصله میره توی اینترنت میزنه FLBDATA YAR یه دونه بیت دانلود میکنه 25 هزار پول جور میکنه میره استیدیو یه دونه کار رکورد میکنه بعد میاد پیوی مثلا کسایی که یکم قدیمی ترن شروع میکنه و فشت دادن که از این راه ها میاد مثلا گنده بشن مثلا دیس مثلا خیلی زیاده نلکی و دیس و, و هفته 20 تا رو هفته تمیز آره دیگه <تصفيق> الان یاد گرفتن که دیس بدن، الوکی بدن. امورا اصلا این قضیه خیلی رو نربا خارج از حالا بحث رپ باقیه. عناصر هیپ هاپ تو مشهد چه گرفیتی، گرافیتی، نمی‌دونم هیپ والا... باکس داگام. فکر حقیقتاً چون مشهد شهر مذهبی زیاد از این کارا نمی‌کنه. الان من خدا داریم آره دقیقا حالا نمیخوام راجع به اونها صحبت کنیم فیلن ولی آه. این که شرایط خیلی بخی مثلا گرافیتی رو دیوار ببینی پس فردا نیست یعنی آه. به, آه. سرعت پاک به سرعت پاک میشه آه. چون الان موت شده میدونی گرافیتی های شهرداری هم موت شده آره دقیقا ولی خب اون چیزهایی که بچه ها خیابونی وار میکشن اونا هم همه پاک میشه <laughs> آره یه پارک خفنم داریم تو مشهد پارک ملت قار... شاید هر ایرانی یک باری رفته پارک ملت آره پارک ملت خب تقریبا میشه گفت 98 درصد رپرای مشهد اصلا این پارک ملت پا گرفتن اما خودم والله اصلا پارک ملت شروع کردم اینجوریه اون دیگه چه دیگه خبر خوشی دیگه سلامتی و فیلان از این حرفا میتینگینا هم که کلن خبری نیست پشد میتینگ هست والا من زمانی خیلی میرفتم حقیقتا تا مثلا دو سال دو سال و نیم پیش ولی دو سال دو سالی چون هدفام تغییر کرد و کلن سا شخصیت همه چیم دیگه نمیرم حقیقتا خیلی کم پیش میاد یه جامعیت محدودیت ها چی؟ محدودیت که مثلا چون من خودم گرگان زندگی میکنم من مادرم هم گرگانیه تو گرگان مثلا هره. تو گورگان خیلی سخته یعنی یه کار رو رکورد کردن خیلی سخته الان اکثرا نمیدونم چه اتفاقی افتاده استدیوهای مثلا مجاز شدن ما حتی می‌خوام بریم پادکست هیپ‌هاپی همونجا ضبط کنیم میگن که نه اصلا راه ندارم فاز نه ماشاءالله مشت... مثلا حتی هم دیگه پیدا نمیشه ماشاءالله خداورشو که از این نیست استدیوز ماشاءالله استدیو تا دلت بخواد هست جدی بگم خلاص که حالا از این ها ما مشکلی نداریم اینجا ما دو تا استودیو هست اوکی این ایشون داریم کار میکنیم خب یکم خارج بشیم و بیایم سمت خودت چی شد که اصلا شدی دانیال هیت یعنی چی شد که فکر کردی باید رپر بشی و این تحول توی شخصیتت رخ داد و اومدی به این سمت والا من پدرم شاعر بود حقیقتا یعنی هنوز هم هست و اینکه خارج از اینکه شاعر بود من در کنارش مثلا خواهی سی چیزار می دیدم که داره شعر می نویسا اما محدود بود خیلی محدود بود تا تقریباً سال نمیدونم هشتاد 88 هفت کلن زندگیم شده بود موزیک رپ و از این داستان ها بعد ما یه رفیقی داشتیم تو دبیرستان نه رو تو راهنمایی عذر میخوام آخرای آخر راهنمایی بود دانیال دانالنا اونم دانیال بود برکس اسمش حالا هنوزم هم بام هم رفییم سلامانه که داریم ولی دوریم از هم تقریبا این بنده خدا ما دیدیم که آقا موزیک ر گوش میکنیم ما شروع کردیم به نوشتن و یه کامپیوتر گیر آوردیم باید هدفون شروع کردیم به زود کردن دیگه همونجور پیش رفتیم جلو جلو تا یکی دو سال پیش که یک کم نصفمون درآد کارا حرفه ای تو آکیشو کردی من راضی نبودم ای از اون سال اول چون خب هم شرایط مالیم خیلی عجیب و غریب بود همین که کلا یه سری اتفاقاتی می افتاد من از کارم راضی نبودم اما تقریبا از یکی دو سال پیش دو سال نمیش پیش از کارم شیدا راضی شدم یه چیزی بود که به خودم حال میداد الان نمیدونم کسی حال میکنه نمیکنه از این داستانا خودم باهاش حال میکردم آره. داشتیم میگفتیم یکم برامون گسترده تر میتونی توضیح اون شروعی که کردی اولین کارات تو چه سبکایی بود برامون یکم گسترده ترش ببین کلن تمام رپرایی که از همین الان هم دارن کار میکنن میشه گفت 98 درصدشون اول با فوش شروع میکنن من دام جز همون دسته بودن <تصحيح> دانیان یکی از اون کارای قدیمیت اینم کاری که تو همون او... او... اوایل کارت پخش شد. می‌تونی دوباره برامون اجراش کنی؟ والا خیلی سخته دیگه. مال خیلی سال پیشه ولی فکر کنم یه, یه سری چیزا یادم باشه. آره. اما دیگه شکی با توپخ شاد بخونمش دیگه چون خیلی شده. انشالله نداره دیگه کار اوله. چون دیگه مال خیلی سال پیشه. آقا میگه که اتحاد انفجاری کلمات استدادی استخار استفاده کنی میشه استلاح استثنانی افتدای اشتبایی افتکار پایی دادی انقلاب من داشتیم انتهای ارتجایی احتمالا ابتدای اختشاشی یادم نمیاد چی جیب چی جیب دی آدم نمیار یه آره. یادم همه کسایی که میخواد رپ رو اول شروع کنن میشیدن تون تون دنبال قافیه میگردن آره دیگه دقیقا همینه <تصح> آره. دقیقا میدین چیه بعد اکثر کسایی که کار اولشونو بذاری کنالا همدیگه تو همین ستایلن یعنی دارن یه تک میخونن تا تا تا تا تا, تا. اصلا غیر از این نیست آره یه واقعیته آره این چالش برنامه ماهی که مهم مطرش میکنه خیلی ها بود خیلی خیلی یه ها بود زیاد <تصح> خب میریم جلوتر. زمانی که دیگه اومدی تو استودیو شروع کنی رو تو ضبط کرده. خب اصلا چه چه جوری شد که مثلا تو با استودیو آشنا شدی مثلا فهمیدی که خب برام تو استودیو ضبطش کنم چه اتفاق افتاد؟ حالا ما یه رفیقی داشتیم بعدی قرار شد یه کار حرفه‌ای جمع کنیم دیگه. آره یه کار حرفه‌ای قرار شد جمع کنیم و ما یه رفیقی داشتیم به این زنگ زدیم گفتیم داداش شما یه استودیو به ما بده ما بریم یه کار جم کنیم یه از خونگی کار کردن بیاییم بیرون چند چقدر گذشته بود از اون تایم خونگی کار کردن؟ فکر کنم دو سالی گذشته بود حالا خب حالا 6 سال 91 اینا ها بود 91, 92 بود من اولین کار استدویه این رو زبط کردم حتی هنوز ام... کارار ام کار... دارم چهرمندره پخرش کردی اونو؟ آره تو چنل هم فکر کنم باشه هلا. آره جزبخ کاره خوبه تا. یعنی اونم رازی کرده آره دیگه کاری کاریه که خیلی قدیمیه. آره اجراش شو کلن که قدیمی کفلی نه میگه نه میام جلو دیگه هی میگم جدیدارم اجراش کنید دیگه جدیدارم یکی یکی به این جلو کنیم خب میگه که من به قصد سکوت زدم سنگ به صخره کمونه که خورد بخوادم فهمیدم که چقدر سخته سر نه نه واقعا یادم نمیاد واقعا یادم نمیاد خیلی قدیمه اصلا اینها رو فیری نمیزنم اصلا نمیرم تو چاله آدم میندازی تو چاله چوله جدی ها آره ای اول این اولین مسابقه ای که من فکر کردم که چقدر خوبه که من مهمونامو بندازم تو چاله چوله این ضعیف گیر آوردی دیوار اما کوتاهتر پیدا نکردی این من واقعا کارا قدیم قدیممو یادم نمیاد الان دقیقاً یادت جدید یاد دارم جدیدن هم کارامو یادم نمیاد <تصفح> <تصفح> آ و هوا خراب شده داشی به خدا جی آره من اخر کارا رو اکثرا منویسم مثلا رو کاغذ مینم استودیو رکورد میکنم آه. تا این طرف زیاد نمونید الان شاید مثلا توی هشتم ماه اخیر واقعا وقت واقع نداشتم حتی سرام بخوام چون یکم حالا شرایط زندگی و فلان این حرفا بوده شرکاسم من شیش به وسط میزنم و خونه بیرون میرم دنبال کارم تا 11 آه. آه. خودت باشیم مش می وقت میکنی بشین اینا رو حفظ کنی خب آقا ببین بیشتر تک تک کار کردی حالا نمیدونم آلبوم پخش کردی یا نه آلبوم آره کدوم آلبومت بود هم آلبوم سم هم آلبوم هفت دقیقاً که اینو پخش کردی آلبوم هفت که تقریباً 9 چیز 22 هفته همین 95 پخش شد سمم که 912 94 پخش شد آها پس دستت پوره تو این چیزا آره یه آلبوم دیگه هم داشتم اسمش یادم نمیاد دلید. <تصفيق> آخوان دیگه خیلی قدیمیه آره. ببینی خب تعداد کارات خیلی زیاده وقت نمی کنم تک تک به همشتون آره دیگه الان بخوای به هفتاد تا ترک ثابت کنیم فکر کنم از هر کنیم یه دقیقه ثابت کنیم دقیقا باید یه دو ساعت به هم حرف زنیم آره هفتاد تا ترک داریم کم <تصفيق> آره. دو من گفتی مستقل زندگی می‌کنی. از شراعی تو زندگیت زندگی؟ تا والا تا تو چاله چوله ننداختم بیت یک کم بس نماز کن آره بخوادم وله ما حقیقتا ما نمیخوام زیاد شخصی ها خانوادگیش کنم ولی خب تقریبا یه سالونی میشه که کلان تنها زنگی بچه پایینی بچه بالایی بچه وسطی ببین مشهد رو یه حساب بکن خب برو آخرین میلان آره آخرین میلان آ... آخرین میلان سمت چپ یه بومبست همون جا خونه من. <تصفح> والله دیگه ها چاله چولوهای آره شرک به کوچه <تصفح> میگون آره ما به کوچه میگیم میلان چقدر یاسی <تصفح> یادم نبودیم این ما مشهدی ها به کوچه میگون میلان آره یه سری اصطلاحات ما هستیه خب اینا هم کلاس آموزشی برای شما بذارم لحجه مشهدی به شما یاد بدم. نه دادش ما هم <تصفح> آره نه خب آخی حواس هم نبود راستی فقط ما مشهدی ها به کوچه میگیم میلان هره. هره. دیگه هم چون یه آره, آره آره یه چیزای دیگه‌ای هم میگه چون یه طوری اصطلاح زیاد داریم مثلا الان بخوای تو اصلاحات غرق بشی تا فرض و سبب راجع به اصلاحات با هم صحبت کنی نه من یه بخش از خانواده‌ام مشهد زندگی میکنن و مشهد زیاد در رفتم اومدم چی چه که خب دوباره بندازمت تو چاله کلاً بذار این کلاً سرگرمی تینه منو بندازیت تو چاله دیگه آره میگم خب اصلا وارد صحبت گسترده نمیشه. من هر... از هر دری میخواهم وارد چه از یه دری میری بیرون آره دیگه خب نباید همه چیمان بهت بگم که آره گفتی که از دو سالیه که دیگه اسم در کردی آره تقریبا یعنی دانیال هی ایک... یه تعداد نفر خاصی میشناسن و دنبال میکنه دقیقا از کدوم کارت این اتفاق افتاد آه... از شهر من در این اتفاق افتاد ولی خب پیگی نشد. میشه گفت یه کاری که خب مثلا خیلی خوب جواب داد یه ماکت بود خب یه ماکت بود که من این ماکت رو پخش کردم و خب بازخورده خیلی خیلی قدرتمنی داشت چجوری مثلا؟ یه ماکت گذاشتم تو چنلم بعد اه. تا توی شاابت بگم بالای پاه تا ماشین توی شبید دیدم که این مارک باش همین ماکنی ماکت خیلی معمولی با جوفون خیلی معمولی ضبط شده بودیم چرخ هیچ وقت مت ترک و ضبط نکرد او یعنی ا همین جوری ضبطش کرد گ رو کانال. آه، آره آکی چون مثلا فیری چژزار بودم خیلی خوششون اوده بود گذاشته بودم حالا خم ودونورم میشه گفتین نه مثلا بازخور خوب داشت با چندلت تلگرام بیشتر کار میکن آره؟ با کدوم چنل بیشتر کار میکنی بعد بسی که یکم رابطت شکراب شده باید کانالا <تصفيق> حالا یه سری اتفاقات افتاد اما خب نه چنل ها دمشون گم خیلی هاشون حال دادن به ما خیلی هاشون به ما همکاری دادن یه دوتاشون حالا یه سری اتفاقات افتادون <متنق> <متنق> نمیخوام چیزی صحبت کنم یاد میخوام صحبت نکنم بهترشون بحث ها شده <متنق> آره قبل از اینکه یعنی ببین میخوام با بدونم که بی... بی... تابخان پول خزینه پخش دادی و خیلی وقت خون تو مثلا برید تو سایت خاصی پخش کنی پخش قدی بزنی آره... من این کره که الان جدیدن موجوده آره, آره من من حامد دادم طاغی من یه چیز عادیه من یکی دوباری هزینه پخش هم دادم وره. نیویورکی که نمیشه اینکارشی. چه دو نه آقا ما نه ما نمیتونیم تو اولش خب الان دیگه باز خوری. الان سه کسی تورسانه. سایتی نمیره دنبال موزیکی. اما به شخص خودم الان موزیکی لازم دارم. یه از این روابط مواتا داریم می توی سرش میکنیم میکنی. موزیک میاد ولی. آره دیگه. متأسفانه از وقتی که تلگرام. عربه این فازر رو همه شبکه اجتماعی بود. روی میخوام الان به بحث با داریم وارد بحث خوبی میشه مگه باز اتفاق واسه این بحث نیفته بیا وارد مبحس رسانه ها بشیم چیزی که الان تو رپ فارسی ضعیفه میخوام استارت بحث رو بزنی و بگی مثلا چه مشکلاتی دارن از نظر تو این رسانه ها و چه اتفاقی میفته تو بخش کارات ببین رسانه که خیلی رسانه ها آدمای آدمایی با عالی اما اصلا با خیلیشون همکاری کرد اما من نمیگم رسانه نباید پول بگیره خب مثلا من یه دپعه وقتی حساب دا میزنه خب مثلا پول بیت میده پول میکس میده پول نو میرم میده به رسانه که میرسه نمیخواد پول بده یه این حقیقت اینو نمیشه مثلا دریقش رو میگی نه اما من میگم آقا از کسی که مثلا کارش خوبه که دیگه نه پول بگیره. و مثلا کارزای... پولم میگیرین یه رقم ملسفانه ای که مثلا نرمال نمی مثلا فلان سایت ما مثلا اسم نمیبرم خب فلان فلان سایت آره. یکی از بچا یک بند خدایی یک ویس خالی این یه وایس خالی فرستاده بود خب یه وایس خالی فرستاده من طرف نوشته بود آها آهنگ آه شما تایید شد لطفا حذینه وارد کنید اصلا من موندم دیگه اینو دیدم من حالا نمیگم اسم چه رسانه رسانه کامل هم موتور مجونی فکر کنی مجیدی بوده ولی خب این تیکت رو برات بوغ میذارم آره بوغ مثلا حالا هر کاری میکنی بکنی ببین یه رسانه فقیدی بود تو رپ فارس خب مجونی که فکر کنی رپ فارو بگم آره خب باید خب این رپ فار یادش بخیه من قدیما و بچه بودم و خودم که الان میشیدم کارمو گوش میدم مثلا عدید اون ادمین 25-6 ساله که داشت کار منو گوش میکرد کار خودم رو دارم الان گوش میدم مثلا کارمانه 5-6 سال پیش ها. بعد میام فکر میکنم میگم خدایا این کار آشخال من یعنی هیچی نبود دیگه با میکروفون موبایل ضبط شده بود نمیدونم بیتش هم دانلودی اصلا من فرستاد اما بعد یه اتفاق افتاد برگشت خیلی جالب بود برایم گفت ما یه حزینه پایهی داریم و بعد می یه یک حزینه تکستی داریم یعنی مثلا می گفت من یک علمه غربز اسمتو بندیسم مثلا فلان قدر اضافه می به مبلغ بخشید میدونم میدونم در جریان در جریان این سایت عزیز هستم کامل خیلی از سایت ها رو می شنستم آره ببین این یه موزله و الان تو اومدی از جدید خوشایند بهش نگاه کردی یعنی اومدی گفتی که خب ها مثلا حق دارن به پول پخش میرسه مردم ناراضی هن و مثلا واسه همه خونو بس سایت‌ها بده و بعد اومدی این, م... این مسئله مساله رو الان من دارم اعتراض میکنم خب بهم از این دیدگاه نگاه کنیم چون نیمه پر لیوان رسانه های رپ فارسی خیلی خالی تر از نیمه پر موزلات رسانه های رپ فارسیه مافیاهایی که الان توش وجود داره راجع ای ای به این صحبت کنیم ببین من جدی با اون رسانه ها هیچ مشکلی ندارم میشه از این مثلا بکشیم بیرون بریم صحبه هیچیزی من صحبت هم راجع بش کردم دیگه گفتم آقا. این اتفاقی که میفته اینه مثلا نمید کار علیموان کیه اینا آره. مثلا کار اون با یه هزینه مثلا مثل کار فیلم بره بالا آه. نه اصلا یکی نیست اما وقتی اینا سایت ترافی میاد موزیک مثلا بیس رپ میاد موزیک پاپ میذاره نب مجید ربزادا میاد کار دیسلاف میذاره تو شاید خب اینا ها یکم همچین موزله دیگه خودوش چیز آفته خود آره بعد, تو... بعد میگن که آقا نمیدونم وف فارسی داره میره به درک و از این دستان خواه حق هم داره حق داره خب تقصیر خودمونه دیگه به ببین گفتی بکشیم بیرون از این بحث و باز به بقید چاله ها ببین جزو کارهای خودت کدومشون از همه تابتر یعنی میگه الان مثلا شنونده من اگه دانیال هیت ازش اشیش موزیک رو گوش نداده خودت کدوم آهنگ رو پیشنهاد بدی که برم گوش کنه این آهنگ رو بعد فکر می‌کنه که با اون آهنگ میاد مثلا طرفدار دانیال بشه حالا من همه کارم دوست دارم دیگه و عاشقش اما اون... این که از کارایی که من خیلی بایش حال می‌کنم راهه به نظرم از اه... یه سری از کارای دیگه هم خیلی بهتره خب اه... یعنی خودتون کارو خیلی بیشتر دوست داری دیگه آره. ایسو اشکال. سایه با من به ورسه Okay, بریم بر واسهزم میگیر میشه رفت میشه رفت جش میگیری فقط با گ شم مشاهده عینه شکستششه میخواام نکنم ولی زندگی به مده رو هیچ بلت با و خندت داخنی میشه که توی فنداسمونخر و بر جای بام یا حالت گامما صبحتون حم است که عاعت من خیلی میگذره دنبال بقا با قا چم با باش مثل باشین اسمی فللاین ها خسته تو جایی های مبخورره تای ما در گستسییر جفا دبینم بشه کارای <متحن> <سزن> قشنگ زیاد داری همکاری داشتی مثلا با یک آدم معروف تو رپ فارسی با یک کسی که صاحب نامتر باشه با تجربه تر باشه والا <متحن> یه چیزی هست توی کلی درست توی رپ فارسی ببین که تو اگه با یه آرتिस्ट مثلا به نام همکاری کنی بعد میدونم میگن آها فلانی با اونو کرده یا مثلا فیلانی زیر پرچم اون من خب با سه چهار تا معتبر داشتم موزیک می‌ساستم و این اتفاقات گفتم چی چیزا یعنی دیدم ها دیدم که سالها بعد همچین کسی رو مثلا دیده بودن که با فلانی تاره آه فلانی با فلانی و حالا نیمیگن که کاره همون از اون قوی تره خب این هارو نیمینندی من همین خاطر همین مسئله کلن قیدشی زدم و حالا حالا هم فکر نکنم با خودت خود تو تخیلات خودت یا تو فکری که داری مثلا جزو فانتزی ها که مثلا با کی همکاری بکنی؟ اوه چه سوال سختی والا من کلا باارت های زیادی من از این آدمام که کلا هر موزیکی باحال باشه گوش میدن حالا یعنی تعصب رو آرتیست خاصی ندارم ولی بله خب خیلی آرام تو رپ فارسی کللا دوست دارم هره. یکی از شخصیتهایی که شدید دوستش دارم خو خب علی سرنا که اصلا بحث جدا. خب که, تعصور... که فیت نمیده نه. داشت. علی نه, نه فیت نمینه علی سور نه نه نمیگم قرار نیست نه نمیگم که قرار فانتزی مینه که با اینا فیت من فعلا فانتزی فیت با کسی رو ندارم خب آه. اینا کسانی که میگم یکم علاقه دارم نسبت بهشون خب نه اینکه تعصبی دیدی بعضیا تعصبی ان رو بعضی اصلا تعصبی آره. نه رو دوست دارم این دنبالشون میکنم رضا پیشتر رو رو دنبال میکنم بعد نیمونیمو شو کاراشو دنبال میکنم الان خارج از هرچی که بوده نه کار ندم کار خیلی هر دنبال میکنم دانیان اجرا خوب امشب واسه اون اصلا انجام هر هرچی من بخواستم یه اجرا خفن ازت ببینم ندیدم ولی خب میخوام چون به من قبلا گفته بودی نمیدونم ارم باید مطرحش کنم یا گفتی که آه. یک مجموعه در راه داری و یک روزی منتشر میشه که خیلی هم دور نیست. حالا روزش رو نمیگم که اذیت نشی. راجع اون مجموعه برام بگو. نه نه روزش که 9 فروردینه تو چنل <laughs> اعلام <آه>. کرد. ها؟ <laughs> آره. اعلام کردی که ایچی خب؟ آره هم مجموعه هشتگ خوشبختیه که هفت تا ترک داره آن که با پوریا بشری کیوان تعبیر و دانیال سیمه میکسام از هم با شاهیم بهزاد و کیوان تعبیره اینکه خب مجموعه که چند وقتی روی زمان گذاشتیم که یعنی یه آدم ها سرویس یادیم بستو پوریا بشری این تفلک ها خیلی عذیتش میکنم یعنی الان آلبوم اوکیه بسته شده دیگه نه بسته نشده یه ترکش نوحه اسفن بسته شده پخش میشه ولی تا نوحه فروردین کامله دیگه چه برنامه دارید در آینده والا برنامه که برنامه موزیک ویدیو دارم دو دوسته تا این خب, خب. تا موزیک ویدیو پخش کردی جدا جد... جد از این روی که میخوای بدی نه نه نه خب اما برنامه کاری زیاد دارم جدا از این سیری از... کارایی که دارم مخفیانه انجام میدم به سری برنامه دارم <تصفح> ها وقت فکر کردی که مثلا جدا از رپر بودن یعنی جدا از وار حضور داشتن در عنصر رپ در هیپپ ایران مثلا تو قسمت دیگه فعالیت کنیم مثلا بری گرافیتی بکشی نمیدونم بری یه کارای دیگه بکنی والا کارای دیگه که من خیلی دوست داشتم یه زمانی گرافیتی بکشم اما استعدادشو نداشتم من یک قطعا رو درو بکنم یعنی نفتی امتحان کردی؟ آره خیلی هم رفتم تا اون کردم حتی من رشتم تجربه بود برای همین میگم 6 سال تو دبی درس سال تجربه خوندم بعد یعنی معدل اول دبیرستان رسان 20 دبی رسان سه صدونم دقیقاً سوم دبی رسان 6 چهارم دبی رسان نصف خوندم بعد کلا رفتم گرافیک که مثلا چه می‌خونم نقش باقاشو از اینا بسونه بکشم بعد دیگه کلا افتادم نوع این به خاطر آب و هوا ادا داش اصلا دوستای دیگه‌ای نداره مجبوری فکر کنی قضیه دیگه ای داره خدا. نه نه من فقط به خاطر آب و هوا نه هره. اصلا رفل لعنتی حسوده نمی‌ذاره که کاری کارت دیگه اینجا. آره چه پاسوخ دندان شکنی اوکی آقا زیاد وقت رو نمیگیرم ما تو روال برنامهمون اینه که از هر مهمونی درخواست می‌کنیم یه چیزی رو برای ما یادگاری بذاره یعنی حالا هر چی که خودش میدونه دیگه اصلا هیچ ما هیچ ایج... مثلا ایج... اصلا, اصلا نمیخوام بگیم که مثلا برو فری استایل اجرا کن بفرس ویدیو بگی بفرس اصلا از این چیزا نمیخوام میخوام بدونم که تو دوست داری چیکار بکنی واسه برنامه چه کاری انجام بدم نه، دید. گفتم اصلا نمیخوام فری استایل باشه یا مثلا میوزیک ویدیو میوزیک باشه یا اصلا چی یه چیزی هست اه. تو یعنی هشتای وقتی کلان در راسته همونه حالا. فقط یه جمعه میگو هر کی هستی هر جا هستی هر کاری داری انجام میدی اصلا نیست ملیت چیه چه میدونم رنگ پوسته چه رنگیه فقط اینو بدون که خودتو باید باور کنی <تصفيق> اصلا من تمام حرفم از, از این به بده اپیادن هم همینه که خودتو باور کن هر <تصفيق> کاری که داری انجام میدی اقدام میکنی خودتو فقط باور کن همین کافی خب, خب اصلا مهم نیست چه اتفاقاتو میفته همین یه جمله بسته همین یه جمله بسته یعنی من ببینیسم هیدیه دانیال هید برنامه همین یه جمله آبه خب چیکار کنم دیگه برنامه یعنی فیریه سایل <تصفيق> نمیدی فیریه <تصفيق> سایل ک از هشتای #خوشبختی یه دونه فیو اینستاگرام خوبه خیلی خوبه اوکه. اوکه. اوکه. آقا از این هر کاره ای آخر... ادبی نداره باید بخونم پس بسن اصلا همون کاره که بیادبی ادبی داره بخونم بدم و بزاری نه چون هشتای #خوشبختی کلا مثبت 18 من کل زندگیمو مچاله کردم گذاشتم تو هشتای #خوشبختی ما یعنی کل مثبت 18 ها تو گوشیتون داخل آره دقیق گذاشتم عموت هر اتفاقی افتاد من چون کلان آره. شخصیت هم یادم لق به انه دست قولم بیست آره اصلا یه نیتایی میگه من باید آشنا شدم که اصلا خیلی پسر خوبی بودی آره من اصلا آشنا که تم رفید مخصوصت اون ویست الان میخوام بذارم آره اونو بذارید یه تمامه دیگه, تمام دیگه. عالیه اون اصلا خب من دلاشت. هنوز یادم میاد میخواه آره حرف آخرت یه جمله بگم این کذیب بر من خیلی سنگ هیچ وقت نذاریم برای پول آرتیست مورد علاقه با کسی که اصلا در حد دلوی نشید نسیم کنیم ایوه با حالی زدیم الان به چهان نیستم اگر دست میزدیم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خونه که اینجوری خیلی مصاحبه اکتیو و فانی شد و خیلی خوشم آمد دمت گرم که قبول کردی بر... تو برنامه ما باشی و برات آرزو موفقیت معنفقیت دوستت دارم افید. خیلی گولی گرگونت خدا مخصص هم و که این قسمت رو هم مثل گذشته با دقت و کامل گوش دادید و امیدارم که نکات لازم که مهم بود از این قسمت برداشت کنید برداشت کرده باشید قسمت به قسمت داریم سنی میکنیم که متفاقت تر از قبل باشیم و نمیخوایم از شخصیت یا اون ریل آرتیستی که داریم باش گفتگو میکنیم دور بشیم. اما دقیقا میخوایم ارتباط رو مستقیم بین شنونده و آرتیست برقرار بکنیم و یکی از ویژهگی های برنامه بوده که از قسمت اول تا الان تو, تو توجه میشه. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما مثل همیشه هستم در صفحه اینستاگرام به نشانی هاپ اینترویو و کانال های ارتباطی دیگه مثل کانال تلگرام و آیدی ارتباط با ادمین همین زیاد سرتون درد نمیارم و باز هم تشکر که این قسمت رو گوش کردید تا قسمت بعدی گفتگوی پاپی خدا یار و نگهدار شما